شکست یک ملت اون وقتی اتفاق می افتد که معتقد بشود که نمی توانه کاری انجام بده این اول شکست هر است. اونا خواستن این احساس رو دلدری ایرانیان به وجود بیارن در دوران جنگ تحمیلی اما قضیه به عکس شد جنگ تحمیلی یعنی دفاع مقدس ملت ایران نشان داد که یک ملت در سایه اتحاد، در سایه ایمان به خدا در سایه حسن زن به خدای متعال و اعتقاد به وعده الهی صدق وعده الهی می میتوانه از همه گذرگاه‌های دشوار عبور کنه و میتوانه در مقابل دشمنان بیسته و میتوانه دشمن را وادار به هزیمت و عقب نشینی کنه این در جنگ تحمیلی این رو به همه ما نشان داد